عزیزان به کلاسی دیگه ای از دانش کرده یک کتاب مقدس خوش اومدین. ضمن بررسی کتاب های انبیا حالا به کتاب دانیال رسیدیم. یادتون باشه که تمامی کتاب مقدس سودمنده و در سر تا سر کلام خدا ما ابرت ها و مثال هایی رو برای زندگی خودمون میبینیم. چیزهای زیادی هست که میتونیم از دانیال یاد بگیریم. او مثال عالی برای زندگی امروزه ما هست. حالا با هم به دقت به درس امروز معلممون گوش میکنیم. در سال سوم سلطنت یهویاقیم، پادشاه یهودا، نصر پادشاه بابل با سپاهیان خود به اوشریم حمله کرد و آن را محاصره نمود. خداوند اجازه داد که او یهویاقیم را به اسارت گیرد و ظروف مقدس خانه خدا را غارت کند. او کسانی را که اسیر کرده بود با خود به معبد خدای خیش در بابل برد. و ظروف را در خزانه معبد گذاشت نبوکت به وزیر دربار خود اشفناز دستور داد از میان شاهزادگان و اشرافزادگان یهودی اسیر شده چند تن را انتخاب کند و زبان و علوم بابلی را با آنان یاد دهد این افراد میبایست جوانانی باشند بدون نقص عضو، خوشقیافه با استعداد، تیزهوش و دانا تا شایستگی خدمت در دربار را داشته باشند پادشاه مقرر داشت که در طول سه سال تعلیم و تربیت ایشان هر روز از خوراکی که او می‌خورد و شرابی که او می نوشید به آنان بدهند و پس از پایان سه سال آنها را به خدمت او بیاورند. در بین افرادی که انتخاب شدند چهار جوان از قبیله یهودا به اسامی دانیال، هننیا، میشائیل و ازریا بودند که وزیر دربار نامهای جدید بابلی به با آنها داد. او دانیال را بلچسر، هننیا را شدرک، میشائیل را میشک و ازریار را ابدنقو نقو نامید ولی دانیال تصمیم گرفت از خوراک و شرابی که از طرف پادشاه به ایشان داده میشد نخورد زیرا باعث میگردید که او شرعن نجس شود پس از وزیر دربار خواهش کرد غذای دیگری به او بدهد در آیاتی که خوندیم برای اولین بار با دانیال آشنا میشیم چهارمین نبی بزرگ و سومین نبی از انبیاء در اسارت. همونطور که قبلا اشاره کردم سقوط اورشلیم 20 سال طول کشید. اولین باری که اورشلیم سقوط کرد در زمان پادشاهی یهویاقیم بود. در اون موقع فقط تعداد اندکی از شهروندان سرشناس به بابل به اسیری رفتند. یهویاقیم تسلیم نبوکت نصر شد و به مدت سه سال او رو در سرزمین اسرائیل خدمت کرد. یهویاقیم به نبوکت نصر خراج پرداخت می کرد. اما این سقوط اورشلیم به اندازه‌ی حملات بعدی در 20 سال آینده دردناک نبود بعد از سه سال یهویاقیم بر علیه نصر طغیان کرد و شهر برای دومین بار فتح شد و پسر کوچک یهویاقیم به نام یهویاکین به طور نمادین شهر را تسلیم نبوخت نصر کرد در اون زمان صدقیا برادر یهویاقیم به عنوان پادشاه دست تعین تعیین شد صدقیا 11 سال حکومت کرد و بعد او هم طغیان کرد و شهر دوباره فتح شد سومین فتح اورشلیم در واقع یک فاجعه بود. شهر با خاک یکسان شد. تمامی شهروندان به جز پیران و بیماران و ارمیای نبی همه به بابل به اسیری رفتن. وقتی ما دانیال رو ملاقات می کنیم، در اولین سقوط اورشلیم دانیال حدود 14 سالش بود. تعداد زیادی از مردم به بابل تبیید نشدن. اما همونطور که در آیات بالا خوندیم، افراد برگزیده یک کمی مثل دانیال و دوستانش به بابل برده شدند. نبوکت نصر آشکارا به رئیس خااج سرایش گفته بود من افراد نخبه شاهزادگان و جوانان باهوش کسانی که خوشتیب ماهر و با حکمت هستن میخوام چیزی که او به رئیس خاج سرایان گفته بود یک چنین چیزی بود. من اون کاهنین انبیا و هیچ کدام از اون دیوانگان مذهبی رو نمیخوام. من دانشجویان قانون و دانشجویان پزشکی و جوانان واقعا باهوش رو میخوام تحت چنین شرایطی بود که دانیال و از دوستانش به بابل برده شدند تحت مشیت الهی اونها به طور استراتژیک قبل از اینکه بقیه اوسرا اورشلیم رو ترک کنند در اونجا قرار گرفتند حزقیال تا نه سال بعد به بابل نرفت او هم قبل از اینکه عمده اوسرا در مرحله سوم به بابل برند به اسیری رفت خدا با مشیت خودش به طور استراتژیک سازمانی رو برای خیریت قوم خودش در بابل ایجاد کرد تا اینکه وقتی اکثریت اوسرا وارد بابل میشن اونها تأثیر زیادی در قصر نبوکت نصر داشته باشه خیلی هیجان انگیزه که مشیت الهی رو میبینیم که این چونین پویا در کار هست کتاب دانیال به دو بخش تقسیم میشه شش باب اول داستانهای تاریخی هستند. باب هفت تا دوازده مکاشفات نبوتی هستند. وقتی ما به دانیال و هزقیال فکر میکنیم فکرمون به سمت مکاشفه میره آخرین کتاب از عهد جدید به راستی که میتونیم دانیال و هزقیال و یوحنای رسول رو در یک طبقه قرار بدیم. همونطور که قبلا هم اشاره کردم وقتی هزقیال، دانیال و یوحنا هر سه کتاب‌های مکاشفاتی خود رو در کتاب مقدس می‌نوشتند در تبعید بودند. اونها مکاشفاتی رو نوشتند. بدین معنی که اونها رویاهایی از آینده به ما دادند که بجز از این طریق ما از اونها نمی‌تونستیم اطلاع داشته باشیم. اونها این متون ای رو به میدند که به اونها اسکاتالوژیکال هم میگن. کلمه یونانی اسکات به معنی چیزهای آینده هست. اسکاتالوژی به معنی مطالعه چیزهای آینده هست. نبوتهای اسکاتالوژیکال شما را به پشت پرده میبره و چیزهایی رو که در آینده قرار هست اتفاق بیفته به شما نشون میده. در کتاب دانیال باب 7 تا 12 ما نبوتهای اسکاتالوژیکال رو میبینیم. در که این قسمتها همونقدر سخته که در کتاب هزقیال و مکاشفه سخته. شش باب اول کتاب دانیال مثل شش باب بعدی نیستند. شش باب اول کتاب دانیال رو خواهید دید که درکش بسیار آسونه چون مربوط به وقایه تاریخی هستند. های روحانی زیادی در این باب هستند. یادتونه که آیه کلیدی برای تمام وقایع تاریخی در اول قرنتیان ده آیه 11 هست. یادتونه که آیه کلیدی برای تمام وقایع تاریخی در اول قرنتیان ده آیه یازده است که میگه این امور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما که در زمانی به سر میبریم که قایت همه آثار تحقق یافته است وقتی که این انبیا وقایع تاریخی رو به ما میدن در واقع به ما هشدارها و مثال رو میدن پس اگر به این نمونه ها و عبرت ها در شش باب اول کتاب دانیال دقت کنید نمونه هایی از هر دو رو به فراوانی خواهید دید شخصیت های کتاب مقدس امتیازات و کاستی های خودشون رودارن وقتی که در عهد جدید در مورد شخصیت های کتاب مقدس میخونید شما نشانه های امتیاز رو میبینید وقتی درخت قدیم در مورد اونها می خونید، شما نشانه های امتیازات و کاستی های اونها رو خواهید دید درخت جدید از اونها با گناهان و شکست هاشون یاد نشده بلکه از اونها با موفقیت یاد شده. درخت قدیم شما می‌بینید که زندگی های اونها پر از فراز و نشیب های روحانی است. اگرچه این در مورد یوسف و در مورد دانیال صدق نمی‌کنه. دانیال و یوسف پاکترین شخصیت‌های های قدیم هستن. دانیال پاکترین شخص کتاب مقدس هست. او وقتی چهارده سالش بود به اسارت بابل رفت تمام عمرش رو در جامعه دشمن در پادشاهی نبوکت نصر و پسرش بلشسر در بابل زندگی کرد. او در دوره داریوش مادی و در دوره کوروش کبیر زندگی کرد. او تمام دوره هفتاد ساله اسارت رو در بابل زندگی کرد. او بیش از اون پیر و نحیف شده بود که بتونه با اسرا به زادگاهش برگرده، اما بازگشت اونها را از اسارت دید. وظیفه نقش دانیال این بود که به قوم یهودا نشون بده که چطور از اوطه اسارت بر بیان. حتی زمانی که 14 ساله بود، به طرز حیرت انگیزی از اوطه اسارت بر اومد. دانیال نمونه عالی برای قوم یهودا و برای من و شماست رومیان دوازده آیات یک تا دو میگه ای ایمانداران عزیز رفتار و کردار و شیوه ی زندگی مردم دنیا را تقلیق نکنید این بدین معنیه که ما تأثیر میگیریم چه بخواهیم و چه نخواهیم چه بدونیم و چه ندونیم دائما تحت تأثیر این فشار هستیم که به شکل این دنیا در بیاییم در رومیان دوازده پولس ادامه می و میگه بگذارید، خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچه را که خوب و کامل و مورد پسنده اوست کشف کنید این نصیحتی برای ایمانداران در دوره عهد جدید هست. همین چیز وقتی دانیال به بابل رسید در مورد او هم صدق میکنه چندان طول نکشید که دانیال فهمید فشار زیادی هست تا او رو شکل فرهنگ بیگانه بکنه. اون موقع او یک نوجوان 14 ساله بود. او در یک دانشگاه بابل تحت تعلیم مردان حکیم نبوکت نصر قرار گرفت و به زودی یکی از مردان حکیم بابل شد. اولین موضوعی که دانیال با آن مواجه شد خوراکی های لذیذ ها بود. احتمالاً غذاها شامل گوشت خوک و انواع چیزهایی بود که از نظر این نوجوان یهودی ناپاک بودند. ما میخونیم که دانیال در دل خودش نیت کرد که خودش رو به این چیزها آلوده نکنه. دانیال و سه دوست او معنی اسامیشان به نحوی به خدا مربوط می می‌شد. هر موقع که شما نامی رو می بینید که به ایل یا ال ختم میشه، به این معنی که اون به نوعی به خدا مربوط میشه چون در زبان عبری کلمه ایل به معنی خدا هست. در حالت جمع الوهیم میشه و در حالت مفرد ایل تلفظ میشه. پس وقتی شما اسامی مثل دانیال و میشائیل رو می بینید، می دونید که به نحوی به خدا ارتباط داره معنی نام دانیال این هست خدا داور من است و معنیش این بود که دانیال با خدا راه میرفت و از خدا میخواست که هر لحظه او رو داوری کنه میشائیل به معنی کسی هست که شکل خداست اگر اسمی به آه ختم بشه اون نام هم به نحوی به خدا اشاره می کنه چون کلمه دیگر برای خدا یهوه هست کنانیا به معنی یهوه ترجیح داده شد و ازریا به معنی کمک شده توسط یهوه است. حالا اولین کاری که بابلیا ها کردند این بود که اسامی ابری این نوجوانان را عوض کردند. نام دانیال به بلچسر تغییر کرد که به این معنی هست. بل زندگی او را حفاظت میکنه. بل خدای بابلیهای های بت بود, بود. این مرد جوان را تصور کنید که در اسارت هست و از خدا میخواد که در هر قدم او را داوری کنه. و به خدایی دعا میکنه یه داور او برای محافظت از او هست و حالا اسم جدیدی به او داده شده که از بعل میخواد از خدای بود بابلی که او را محافظت کنه. اونها سعی داشتند که دانیال رو وادار کنند که باور کنه تحت محافظت خدای بود نام میشائل به میشک تغییر یافت که نام مردوک بت دیگر بابلی ها بود. نام هننیاب به شدرک تغییر یافت که نام خدای ماه در بابل بود. نام ازریا به عبد نقود یافت که به معنی خادم خدای حکمت بابلی ها بود. میبینید که نبوکت نصر به این چهار مرد جوان در همون ابتدای کار میگه ما از شما بابلی خواهیم ساخت. این جاییه که این مردان جوان نمونه های باشکوهی برای ما میشن. این نوجوانان در مقابل نبوکت نصر و کل امپراتوری بابل استادند و گفتند شما از ما بابلی نخواهید ساخت. ما از شما ایماندار خواهیم ساخت این یک نمونه هست کاربرد شخصی و عملی برای من و شما اینه فشارهایی بر روی زندگی من و شما هست ما در دنیای خودمون دو نوع افراد داریم بابلی ها و ایمانداران بابلی ها سعی میکنند از ایمانداران بابلی بسازند و ایمانداران هم باید سعی کنند از بابلی ها ایماندار بسازند در کتاب دانیال باب چهار ما مثال خوبی از زندگی این چهار نوجوان رو میبینیم باب چهارم کتاب دانیال به ما میگه نبوکت نصر نابقه که امپراتوری بابل رو برپا کرده بود که ابرقدرت زمان خودش بود به ایمان به خدا اعتراف کرد. دانیال باب چهار یکی از برجسته ترین بابهای کل کلام خداست. نبوکت نصر اولین بخش از این باب رو خودش نوشته. در یک مرحله وقتی ما این باب رو میخونیم روشن میشه که کس دیگه اون کتاب رو نوشته. در آخرین بخش این باب باز هم نبوکت نصر دست به قلم میبره در این باب بزرگ کتاب مقدس نبوکت نصر به خدای دانیال و سه دوستش ایمان میاره و اعتراف میکنه چه چیزی نبوکت نصر رو به این نتیجه میرسونه همش از جایی شروع شد که دانیال نخواست که خودش رو با غذاهای ناپاک بابل آلوده کنه دانیال مقاومت کرد و گفت شما از من یک بابلی نخواهید ساخت با فیض خدا من از شما ایماندار خواهم ساخت وقتی شما تاریخ باستان رو بخونید به عظمت نبوکت نصر و وسعت امپراتوری بابل پی خواهید برد. نبوکت نصر از نقطه نظر دنیا چهره برجسته جهانی و عظیمی بود. در همون ابتدای اسارت دانیال و سه دوستش برخورد دیگری داشتند. نبوکت نصر رویایی دیده بود. ظاهرا او همیشه خواب می‌دید اما به شدت از خواب اخیر وحشت کرده بود. تمامی حکیمان دربارش رو دعوت کرد از ستاره شناسان گرفته تا منجمان و جادوگران نبوکت نصر پادشاه عاقلی بود او گفت من حدس میزنم که شما آقایان هر بار چیزهای جعلی به من میگید حالا من خوابی دیدم که میخوام اون رو تعبیر کنید اما شما رو اینطور آزمایش میکنم اول به من بگید که خواب من چی بوده اون موقع خواهم فهمید که تعبیری که به من میگید از ماورا و طبیعه میاد اول خواب مرا رو بگید بعد تعبیرش رو خواب این مشکل عظیمی برای تمامی اون مردان حکیم بابل بود. تعبیر کردن خواب چندان مشکل نبود. مشکل اصلی این بود که از کجا بفهمیم که این تعبیر تعبیر درستی هست. این چیزی بود که نبوکت نبوکدنصر با اون مواجه بود. احتمالا قبلا همین مسئله براش پیش اومده بود. اون حکیمان به سر گفتند هیچ پادشاهی تا حالا چنین درخواست بیدلیلی از کسی نکرده. و اونها در پاسخ به درخواست بیدلیل شاه چیز مهم گفتند. اونها گفتن هیچ کس نتوانسته یا نمیتونه چیزی رو که تو میخواهی بگه. مگر اینکه خدایان در اون شخص ساکن باشن و همه میدونند که خدایان در انسان ساکن نمیشند. نبوکن نصر پاسخ داد اگر نتونید رویای من و تعبیرش رو بگید من شما رو میکشم و خانه هایتان را نابود میکنم. تا تبدیل به تلی از خاک بشه همه شما کشته خواهید شد. جلادان عملا به دانشگاه رفتند و خواستند که همه اون استادان و مردان حکیم را بکوشند که این شامل حال دانیال و دوستان او هم میشد چون اونها هم در دانشگاه ثبت نام کرده بودند و دانشجویان آن مردان حکیم بودند وقتی جلادان اومدن که اونها را بکوشند دانیال که فقط یک نوجوان بود با حکمتی بزرگ شروع به صحبت کرد دانیال پرسید چرا پادشاه فرمان به این سختی صادر کرده جلادان گفتند پادشاه و حکیمان توافق کردند حکیمان گفتند که خدایان در انسان‌ها زندگی نمیکنند و چون خدایان در انسان‌ها زندگی نمی اونها آنها نمیتونند خواب پادشاه رو بگن دانیال گفت اما اونها دقیقا همینجا جا اشتباه کردند چون خدا در انسان زندگی میکنه بهتون میگم چیکار کنید این افراد رو نکشید برید و از شاه برای من قرار ملاقات بگیرید من به پادشاه خواهم گفت که چه خوابی دیده و خوابش رو تعبیر خواهم کرد همین که جلادان رفتن سه دوست دانیال از او پرسیدند آیا میدونی که پادشاه چه خوابی دیده؟ او در پاسخ گفت هیچ خبری از خواب پادشاه ندارم. ما باید با هم دعا کنیم. دانیال و دوستانش تمام شب رو دعا کردند. وقتی اونها دعا میکردن خدا به طور خارق العاده‌ای خواب نبو کرد نصر رو بر دانیال آشکار کرد و تعبیر رویا رو هم به او داد. دانیال به حضور امپراتور رفت و امپراتور گفت: مرد جوان، شنیدهام که میتونی به من بگی که چه خوابی دیدم؟ دانیال پاسخ داد نه قربان من نمیتونم. هیچ انسانی روی زمین نیست که بتونه این کار رو بکنه. اما خدایی در آسمان هست که میتونه. خدایی در آسمان هست و او در من زندگی میکنه و مردان حکیم تو در اینجا اشتباه کردن. این خدایی که در آسمانه و در من هم زندگی میکنه به من گفته که تو چه خوابی دیدی و تعبیرش رو هم به من گفته. ای نبوکت نصر. خوابی که تو دیدی اینه و تعبیرش هم اینه نبوخذنصر بر خاک افتاد و سجده کرد و از اون لحظه به بعد او دانیال رو به عنوان مردی که روح خدا در او زندگی میکنه خطاب کرد بلشسر پادشاه بعد از نبوکت نصر هم به همین ترتیب او رو خطاب میکرد ملکه های زمان بلشسر هم او را اینگونه خطاب میکردند و حتی داریوش مادی دانیال رو مردی خطاب میکرد که روح خدا در او زندگی میکنه چون دانیال اونها رو متقاعد کرده بود که این حقیقت داره حالا آیا این نمونه‌ای برای من و شما نیست و من و شما رو به چالش نمیکشه؟ آیا ایمان دارید که روح خدا در شما زندگی میکنه؟ اگر زندگی میکنه، معنیش چیه آیا معنیشی نیست که شما این توانایی رو دارید که بتونید کارهای خارق العاده و معجزه‌سا بکنی میخوام ازتون سوالی بپرسم توی دلتون به اونها جواب بدید آیا ایمان دارید که هیچ چیزی برای خدا غیر ممکن نیست آیا ایمان دارید که در شرایط بحرانی اگر به خدا اعتماد کنید هی چیزی برای شما غیر ممکن نیست؟ آیا ایمان دارید که اگر خدا در ما هست و با ما هست و برای ما هست، همه چیز برای ما امکان داره؟ آیا ایمان دارید که برای هر مرد یا زنی که ایمان داره، خدا در او و بر او و با او هست، هر چیزی ممکنه؟ امیدوارم که به همه اون سوالات جواب مثبت داده باشید. چون آیاتی در کتاب مقدس هست که به همه اون سوالات جواب میده، بله. اولین کسی که با سؤال تولد از باکره مواجه شد خود باکره بود وقتی مریم دختر روستایی درباره تولد از باکره سوال کرد به او گفته شد که برای خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست وقتی رسولان نتوانستند پسر مردی را شفا بدن و از خدا پرسیدن چرا نتوانستند دورو شفا بدن ایسا این گونه پاسخ داد این از بی ایمانی شماست اگر ایمانی به اندازه اادداره خردل می داشتید هیچ چیزی برای شما غیرمکن نمیشد رسولان پرسیدند که چطور میتوانند یک نفر رو نجات بدن و عیسی پاسخ داد برای انسان غیر ممکنه. اما برای خدا غیر ممکن نیست برای خدا همه چیز امکان داره وقتی مردی که پسرش بیمار بود به عیسی گفت اگر میتونی کاری بکن بر ما رحم کن عیسی به او گفت ایمان بیاورد برای کسی که ایمان میاره همه چیز ممکن هست در ادامه این تست نمیدونم آیا شما با فشارها و مشکلاتی مواجه شدید که قطعاً علاج ناپذیر، اجتناب ناپذیر، غیر قابل تحمل و غیر ممکن بودند. روزی از مردی پرسیدم آیا با چیزی اجتناب ناپذیر، لا علاج و غیر قابل تحمل و غیر ممکن مواجه شدی؟ او گفت: بله. هر روز صبح من وقت صبونه به میز صبونه نگاه می کنم و چیزهای علاج ناپذیر، اجتناب ناپذیر، غیر قابل تحمل و غیر ممکن رو می بینم. شاید شما در وضعیت بحرانی هستید و با انواع فشارها مواجه هستید. دانیال با مشکلی مواجه شد که لاعلاج بود. او نمیتونست از مشکلش اجتناب کنه. قرار بود کشته بشه. دانیال و سه دوستش و تمامی اون مردان حکیمی که اونها رو آموزش میدادن به دستور نبوکت نصر قرار بود کشته بشن. مشکل دانیال اجتناب ناپذیر و لا علاج بود. تصمیم نبوکت نصر برای قطع, قطع کردن مردان حکیمش غیر قابل تحمل بود. وقتی نبوکد نصر گفت به من بگید چه خوابی دیدم و بعد اون رو تعبیر کنید این دانیال رو با چیزی غیر ممکن مواجه کرد به هر حال دانیال به کار نبوکت نصر همت گماشت و بعد جلسه دعا تشکیل داد و از خدا خواست که کاری غیر ممکن رو انجام بده پس میبینید که دانیال نمونه بزرگی برای ما هست پنج موعظه در کتاب دانیال ثبت شده که نشان این واقعیت هست که چیزهای خارق العاده وجود دارند و پنج موزه عبارت هستند از مکاشفه و تعبیر رویای نبوکت نصر، رهایی سدوست دانیال از تون آتش، اعتراف ایمان نبوکت نصر، دست نوشته روی دیوار در باب 5 و بعد رهایی دانیال از چاه شیران. این پنج موزه در کتاب دانیال به وقوع پیوسته تا به ما چیزی در رابطه با دانیال نشون میده. یادتون باشه که دانیال نه تنها ایمان رو به ما نشون میده، بلکه ایمانی رو نشون میده که میتونه از احده اصحارت بابلی ها بر بیاد دانیال تمام عمرش رو در صحنه سیاست بابل زندگی کرد احتمالاً او نمیتونست بیشتر از این در جامعه دشمن زندگی کنه از نگاهی واقع گرایانه دانیال نبی مانندش عیا و ارمیا نبود. او یک کارمند حکومتی بود اما کارمندی امین بود که به قوم خدا نشون داد که چطور در بابل زندگی کنند و ایمانشون رو نگه دارند بذارید به بعضی از روش‌های اشاره کنم که دانیال به قوم یهودا نشون داد که چطور در اسارت بابل زندگی کنه. دانیال قطعاً و بیشک به قدرت خدا ایمان داشت. به این دلیلی که او از جانب نبوکدنسر به این منصب گماشته شد. دانیال به نبوکدنسر صادقان شهر داد که نمی‌تونه رویای او رو بگه و تعبیر کنه و از این رو هم به او گفت که خدا در مردم زندگی میکنه دانیال به او گفت خدای زنده و حقیقی در من زندگی می‌کنه. و چون او در من زندگی میکنه من این توانایی رو دارم که کارهای غیر ممکن بکنم این توانایی رو دارم که معجزات خارق بکنم دانیال واقعا و قطعا به قدرت خدا ایمان داشت دانیال قطعا به قدرت دعا ایمان داشت آخرین معجزه از اون پنج معجزه مربوط به چاه شیران بود خلاصه کاربرد شخصی و عملی که میتونیم از اون داستان برداشت کنیم اینه رهایی دانیال از شاه شیران اهمیت جایگاه دعا در زندگی دانیال رو به ما نشون میده معجزه خلاصی او و از چاه شیران پاکی او رو به عنوان یکی از شخصیتهای کتاب مقدس به ما نشون میده در نتیجه تعریف و تعبیر خواب نبوکت نصر دانیال به موقعیت بالایی در بابل دست یافت به خاطر حضور قدرتمند خدا در دانیال نبوکت نصر او را احترام می کرد و او را ارتقا می داد تا جایی که به صدر بابل رسید طبیعی بود که بلند پایگان و نخبگان بابل به دانیال حسودی بکنند. در این قسمت از وقایه تاریخی به باب شش می رسیم. اشراف درباری راه های ابدا می تا دانیال رو به مرگ محکوم کنند. وقتی که شش باب اول کتاب دانیال رو میخونید ملاحظه کنید که به پادشاهان مختلفی اشاره شده. چون این پادشاهان کمک می تاریخ وقوع این حوادث را بدونیم. در چهار باب اول نبوکت پادشاه است. در باب پنج بالشسر پسر نصر پادشاه است. در باب شش داریوش مادی پادشاه است. وقتی به تاریخ این پادشاهان نگاه کنید، متوجه میشید که در این شش باب از کتاب دانیال هفتاد سال از تاریخ اسارت رو پشت سر گذاشته. وقتی که به باب شش میرسید، اشراف و سیاستمداران برجسته بابلی بسیار به دانیال حسودی میکنند و در صدد هستند او رو به مرگ مکون کنند. آنها آجزانه به دنبال راهی هستند که بتونن دانیال رو متهم کنن عیسی توانست در حضور دشمنانش بایسته و بگه کدام یک از شما مرا به گناه متهم کنید. و دشمنانش سکوت کردند اکثر ما نمیتونیم در حضور دوستانمون این کارو بکنیم ما یقینا نمیتونیم طوری زندگی کنیم که حتی دشمنانمون نتونن در ما عیبی پیدا کنند و ما را به گناه متهم کنند. به خاطر پاکی باور نکردنی دانیال دشمنان او هم نمیتونستند او را به گناه یا کار خطایی متهم کنند تنها اتهامی که اونها تونستن به او بزنن این بود که او روزی سه بار دعا میکرد. سه بار در روز دانیال به اتاق خلوت خودش میرفت و پنجره ها رو رو به اورشلیم باز میکرد چون باور داشت که خدا در اورشلیم است دانیال صبح و ظهر و شب نزد خدا دعا میکرد. دشمنان دانیال با حیلگری قانونی رو وضع کردند که هیچ کسی حتی خود پادشاه نمیتونست اون رو نقص کنه. اون قانون غیر قابل تغییر بود. قابل بر اساس اون قانون اگر کسی در مقابل خدا یا شخص دیگری دعا و طلب کمک میکرد باید به چاه شیران انداخته میشد. این تنها راهی بود که اونها توانستند دانیال رو متهم کنند. وقتی اون قانون تصویب شد آیا دانیال از دعا کردن دست کشید؟ به هیچ وجه. دانیال گفت شما هر کاری دلتون میخواد بکنید. اما من به شما چیزی میگم. من نمیتونم در بابل زندگی کنم و دعا نکنم. بنابراین، کمالکن صبح و ظهر و شب دعا میکرد و در این موقع بود که او را دستگیر کردند و به چاه شیران انداختند این داستان نه تنها یکی از بزرگترین معجزات زندگی دانیال رو به ما نشون میده این رو هم نشون میده که دانیال قطعا به قدرت دعا اعتقاد داشت میتونیم فرض کنیم که دانیال به مشیت و اهداف خدا ایمان داشت که او رو در بابل قرار داد و او ایمان داشت که قطعا تحت اراده و مشیت الهی است و به این ترتیب دانیال تبدیل به نمونه یالی برای ما میشه دانیال به عنوان نوجوانی که قطعا به قدرت خدا ایمان داشت شروع کرد او به قدرت دعا ایمان داشت و نیز به مشیت و اراده خدا هم ایمان داشت که او رو در بابل قرار داده بود این چیزی بود که دانیال رو قادر کرد در مقابل نبوکت نصر بیسته و دوستی او را به دست بیاره او را به ایمان بیاره و عملاً مشاور قدرتمندترین مرد جهان بشه کاربرد عملی و شخصی زندگی دانیال چیه من فکر می کنم که کاملا واضح است آیا شما با فشارها و مشکلاتی لاعلاج و اجتناب ناپذیر مواجه میشید اگر میتونستید اونها رو ندیده میگرفتید و از اونها اجتناب میکردید از اونها دوری میکردید این کارو میکردید اما گاهی شما با مشکلات و بحرانها و چالش های روبرو میشید که اجتناب ناپذیر و لاعلاج هستند هیچ راهی برای عبور از اونها نیست. گاهی این فشارها غیر قابل تحملن، اونها غیر ممکن به نظر میان. کاربرد عملی زندگی دانیال اینه. وقتی با چنین بحران بحرانهایی مواجه میشید آیا قطعا به قدرت خدا ایمان دارید؟ آیا قطعا به قدرت دعا ایمان دارید؟ آیا باور می کنید که این مشیت و اراده الهی است که شما را در اون مکان قرار داده که با این چالش ها رو, رو بشید؟ آیا قطعا به این ایمان دارید؟ پس جرأت کنید و دانیال باشید. فقط جرأت کنید و ایمان دانیال رو داشته باشید. وقتی که من و شما در این دنیا ایمانمون رو به کار بگیریم با فشارهای دنیا یا بابلی ها میشیم. فشارهای مخفی جامعه بابلی به طور مرتب ما رو بمباران میکنه. دنیای سکولار مسررانه میخواد که از من و شما بابلی بسازه. دنیای اطراف ما سعی می‌کنه که ارزش‌های بابلی و طرز زندگی بابلی رو به ما بیاموزه. فشارها ادامه دارند. دنیا به من و شما میگه بیا و مثل بقیه ما بابلی شو. چالشی که زندگی دانیال و سه دوستش ما رو بعنوان می‌دارن این هست که غالباً تصمیم بگیرید، غالباً اراده کنید که توسط دنیا آلوده نشید. غالباً اراده کنید که این دنیا از شما بابلی نخواهد ساخت. از خودتون دفاع کنید. فقط نگید شما از من بابلی نخواهید ساخت. حمله کنید و بگید با فیض خدا من از شما ایماندار خواهم ساخت. ببینید وقتی کسی قطعا به قدرت خدا ایمان داره و به قدرت دعا ایمان داره و به اراده و مشیت خدا ایمان داره ایمان اونها نه تنها اونها رو از آلوده شدن توسط بابلی ها حفظ می کنه بلکه فراتر از این عمل می کنه. ایمان اونها تبدیل به صلاحی روحانی میشه اون ایمان از بابلیها ها ایماندار می سازه شما رو به چالش وامی دارم کتاب دانیال رو مطالعه کنید از نمونه های اون پیروی کنید و جرعت کنید که مثل دانیال باشید دانشویان عزیز کلام خدا ما رو به چالش عجیبی وامی داره دنیا به ما نگاه میکنه دنیا میخواد بدونه آیا به چیزی که میگیم ایمان داریم دفعه بعد که وسوسه شدین و تحت فشار قرار گرفتید که مثل دنیا بشید دانیال و سه دوست او رو که قلبن متعهد بودند تا خدا رو پیروی کنند و در هر شرایطی به اون اعتماد کنن به خاطر بیارین. دایما اینه که شما هم مانند دانیال در هر کجایی که خدا شما رو قرار داده شهادت قدرتمندی باشین تا به بعدی خدا شما رو برکت بده و شما رو تشویق کنه که هرچه بیشتر به اون اعتماد کنین.